داوود رشیدی هم رفت و وقتی به این فکر می‌کنم که آدمی با اون همه سابقه و افتخار هنری این سالهای آخر عمرش به آلزایمر گذرونده به شدت غمگین می‌شم آلزایمر به نظرم بدترین اتفاق و ترین پایانیه که میتونه سکانس آخر زندگی آدم رقم بزنه فکر کن که داوود رشیبی بودی و سالها نقش زدی و نقش بازی کردی سالها دیگران رو به نقشهاشون هاشون رسوندی و سالها مردم تو وادار کردی که از مفتش ششنگشتی گرفته تا اون رئیس جمهور عجیب و غریب سرزمین دمولند و این جلوی نقش هات سر تعظیم فرود بیارن اما در پایان زندگیت به جایی برسی که نقش همه چیز رو فراموش کرده باشی که دیگه نقشی برات نمونده باشه که به یادش بیاری که اگه کسی بیاد و از اون همه افتخارت برات تعریف کنه لبخند تلخی بزنی و شاید به ظاهر همراهیش کنی ولی از یادت رفته باشه همه چیز که سلول خاکستریت دیگه توان نداشته باشن تو رو پرت کنن میان اون همه خاطره شیرین و درخشان آلزایمر بیماری نیست یه جور مجازات انگار برای ما آدمها که بیرحمانه بعضی رو به خود مبتلا میکنه تا بعضیای دیگهمون بفهمیم که در سالهای پیش رو روزهایی که میان یا حتی همین دقیقه های پسین میتونیم به خلع دوچار بشیم میتونیم به لحظه های پرتاب بشیم که حاوی ناشنوایی و نابینایی باشه نسبت به هر چه در گذشته کاشتیم و داشتیم آلزایمر انهدام خاطره است در مسلخ تنهای اون لحظه ها و روزهای پایانی مجازات بشره برای پاس نداشتن حالهاش یه جور تقاس همه خاطر بازی که گاهی شورشو در میاریم اما شیرینیش تموم شدنی نیست اینکه یادت بره که روزی عاشق بودی، اینکه یادت بره که روزی به عشقی رسیدی، اینکه روز شکستن شیشه رابطت رو ندونی کی بود، اینکه اون روز که طعم شیرین آفرینندگی رو با خدا تقسیم کردی، چندم کدوم ماه کدوم سال شمسی بود. اینکه چهره مبهم صورت ماه مادرت یادت نیاد. اینکه پدرت رو نتونی با مردای دیگه زندگی تفریخ کنی. اینکه که برادری بوده خواهری، دوستی رفیقی نارفیقی دشمنی حتی اینجاست که شاید حاضر باشی همه چیزتو بدی تا حتی دشمنی رو به یاد بیاری از سرزمین خاطره ها از دوردست های پیشین زندگی که حتی حتی رنگشون زرد و سیاه و تلخه اینجاست که رد دردناک سیلی معلم کلاس سوم ابتدایی هم برای فرار از بیخاطرگی برات جذاب میشه یا حس اون روز که در بهبه بلوغ توی صفحه نان چادری روی سری لغزید و تو بالغ شدی یا حس وقتهایی که دانشجو بودی و در راه بین دو شهر رد آرزوها و رویاهات رو میگرفتی و آخرشم فهمیدی که اون آرزوها و رویاها ها در اون سرزمین سرابی بیش نیستند تلخ و شیرین، سرد و گرم، زبر و نوازشگر، ساده و پیچدار، اینا همه خاطرن و ما خاطر زده حاضرم تلخ ترین خاطره هام رو با کیفیت اچدی روی بزرگ ترین اسکرین زمین ببینم اما بی خاطره نشن. بزرگترین خاطره های من در مقایسه با معمولی ترین های داوود رشیدی چیزی نیستند، اما امان از این بیخاطره شدن در عین زندگی بیخاطره موندن در خلاف نفس خالی شدن از یادها در اوج چشم که دو دو می زنن. تموم شدن همه چیز در حالی که خون توی رکا جاریه و قلبی که می تپه اما خاطرهاش دیگه نیستن آرزوم اینه که قلبم قبل از لحظه اشراق آلزایمر بیسته قبل از بیخاطر شدن قبل از خاموشی همه چیز در اثر فراموشی یاد بدترین درد دنیای نیست که فراموشت کنه، بلکه اونه که باشی و فراموش کنی که روزی کسی بودی روی سحنه ها و جلوی دوربین پشت واجه ها و بر فراز نت در امتداد لبخند ها و عشق ها و در میان زندگی اصلا و کسی نمیدونه شاید در اون روزهای آخر به ادراک این نکته برسی که با این فراموشی یاد هات داری تقاس خاطر بازی نوع بشر رو میدی تقاسی بدتر و تلختر و نا مردانه از مرگ حتی از زندگی محکوم شدی به مرگ خاطرهها به نیستی حافظه به لکنت نستالژی، به تمام شدنی ناتمام به پوچی قبل از هیچی، به آخرین درد، به اعدام یادها و یادوارها.